سلام و سلام به شروعونده های عزیز کانال هزار افسان. امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستم با یک داستان دیگه داستان این قسمت خداوند شاه رو گدا میکنه گدارو شاه میگن که تو زمانهای قدیم یک مرد گدایی بوده که جلوی قصر پادشاه میره و نگهبانو هر کاری میکنن که بره گدا قبول نمیکنه موضوع رو به پادشاه میگن پادشاه گدا رو صدا میکنه و ازش میپرسه که چی میخوای گدا میگه ای پادشاه من فقط یه چیز از تو میخوام قبول میکنی یا نه پادشاه میگه باشه قبول میکنم گدا میگه از شما میخوام فقط سه روز پادشاهی قدرت رو به من بدی پادشاه هم به خاطر این که دل گدا رو نشکنه قبول میکنه چون فکر میکنه که کسی از مردم توی مدت این سه روز متوجه نمیشن که کسی گیر رو تخت سطنت نشسته و خبردار نمیشن که گدا الان شاهه اما همین که مرد گدا شاه میشه و به تخت سلطنت میشینه و قدرت و دستش میگیره. دستور میده که حقوق مردم و حقوق بگیر زیاد بشه و تصمیم های دیگه میگیره برای که مردم آسایش و رفاهشون بیشتر بشه مردم شک میکنن و میپرسن چه خبر شده که تو این سه روز این همه تغییر پیش اومده تو کشور ما وقتی که موضوع رو پیگیری میکنن متوجه میشن که روی تخت پادشاه یه پادشاه دیگه نشسته برای همین میان تو خیابون و تظاهرات میکنن و شلوغی راه میندازن و پادشاه قدیمی رو برکنار میکنن و همین گدار رو به پادشاهی انتخاب میکنن. پادشاه قدیم که اوزار رو اینجوری میبینه دست زن و دو تا پسر کوچیکشو میگیره و از کشور بیرون میره. اونها میرند و میرند تا به کنار یه رودخونه میرسند. پادشاه مجبور میشه برای گذشتن از رودخونه زن و بچه رو یکی یکی رد کنه. برای همین اول یکی از پسراشو میگیره و به اون طرف آب میبره بعد میاد دست زنیشو میگیره تا از آب رد کنه اما همین که وسط آب میرسه میبینه دوتا گرگ سفید اومدن و هر کدوم یکی از پسرها رو به دندون گرفتن و بردن زن و شوهر خیلی ناراحت میشن و میگن خدایا ما رو که از قدرت و تخت پادشاهی انداختی از این طرف هم پسرامون رو نصیب گرگ کردی ما چیکار کنیم بعدش با ناراحتی به راه خودشون ادامه میدن پس از اینکه یه مقداری میرن میرن یه جایی میرسن که استراحت کنن اتفاقا مردی از اونجا میگذشته به پادشاه میگه ای آقا زنم تو پشت این کوه ها در حال زایمانه و کسی نیست که ماما باشه و بتونه بچه رو به دنیا بیاره خواهش میکنم به زن دو ساعت اجازه بده مامایی زن منو انجام بده. خودم هم بعد از اون اونو برش میگردونم اینجا. پادشا قبول میکنه. مرد ناشناس زن رو سوار از خودش میکنه و با خودش میبره. ساعت ها میرن و میرن ولی به جایی نمیرسن. زن میپرسه ای آقا تو به شوهرم گفتی دو ساعته برمیگردم ولی الان نصف روزه که ما راه اومدیم و هنوز نرسیدیم مرد ناشناس میگه این حرفا چیه؟ تو مال منی برای همینطور رو از شوهرت جدا کردم هرچی هم به شوهرت گفتم دروغ بوده زن وقتی این حرفو میشنوه و میفهمه تو دل اون چه خبره خیلی حالش بد میشه بهش میگه تو رو به تمام مقدسات قسمت میدم. منو سالم به شوهرم برگردون. اونقدر با سوز و دل و با قصه میگه که مرد با شنیدن این حرف تنش میلرزه و یه ترسی به دلش میاد. میگه باشه باشه. امیدوارم که تو و خدا منو ببخشین. تو رو برمیگردونم. از اون طرف پادشاه چند ساعتی منتظر میمونه اما از اونش خبری نمیشه میمونه و میمونه و میمونه و دیگه ناامید میشه به راه میفته و از اونجا دور میشه بعد از اینکه به اولین کشور میرسه برای اینکه کاری داشته باشه میره شاگردی یه حموم میشه اتفاقا تو اون کشور میخواستن پادشاه جدید انتخاب کنن رسم بوده که اونجا گنجشکی را آزاد میکردن و گنجشک به سر هر کسی که مینشست اونو شاه میکردن همه مردم جمع شده بودن وقتی گنجشک رو آزاد میکنن گنجشک دور, دور میزنه دور میزنه دور میزنه آخر کار میره روی بام هموم میشینه مردم میرن داخل هموم میبینند مردی با سر و صورت خاکی مشغول تمیز کردن حمومه وقتی اونو میبینن خیلی سراسده را میندازن. اعتراض میکنن. میگن این دیگه کیه؟ ما قبول نداریم. باید از اول گنجیشک را آزاد کنیم. سه بار گنجیشک را آزاد میکنن. هر سه بار روی بوم همون همون میشینه. بنابراین مجبور میشن این شاگرد همومی رو یعنی همون پادشاه قدیم کشور رو به پادشاهی این کشور انتخاب کنن. اما حالا از زن شاه براتون بگم. وقتی مرد ناشناس زن پادشاه رو به محل که قبلا از اونجا برده بودش میرسه میبینه کسی نیست زن بهش میگه باید هم اینجا برامره چادر بزنی خودت هم در بیرون چادر باشی شاید روزی شوهرم برگرده اونم قبول میکنه چادری برای زن میزنه و خودش هم بیرون چادر میمونه و این طرف و اون طرف برای زن غذا تهیه میکنه هیچ وقت هم داخل چادر نمیره چند سال میگذره و اونا به همون صورت تو همون جا میمونن اتفاقا شوهر این زن که با مسلحت خدا دوباره پادشاه شده بود ولی این بار پادشاه دیگه شده بود یه روزی به فکر زن و بچهش میفته و دلش خیلی میگیره تصمیم میگیره برای تفریه به صحرا بره به همراه تعدادی از اطرافیان و سربازاش به سهرا میرسند در این گشت و گذار به همونجا میرسن چون شب بوده تصمی میرن همونجا بمونن کمی که نگاه میکنن متوجه میشن که تو اون نزدیکی یه چادر هست پادشاه به سربازا دستور میده که بریم ببینین اونجا چیه و چه خبره سربازا میرن و برمیگردن میگن پادشاه یه مردی هست بیرون چادر و یه زنی هم هست داخل چادر مرد میگه نگهبان این زنه و نمیام پادشاه دو تا سرباز میفرسته که برن اونجا نگهبانی بدن تا اون مرد بیاد وقتی اون مرد میاد پادشاه میگه تو که اینجا رو خوب میشناسی به سربازا کمک کن تا اینکه که یه ترتیب یه غذا و یه آبی رو برای ما بدن حالا از اون طرف وقتی دوتا سربازا برای نگهبانی میرن هر کدوم یک طرف چادر مشغول نگهبانی میشن یه مدتی میگذره و یکی از اونا میگه رفیق بیا از سرگذشت خودمون صحبت کنیم تو خوابمون نبره و پادشاه شما رو تنبیه نکنه دومیم قبول میکنه اونا سرگذشت خودشون رو تعریف میکنن وقتی که صحبتشون تموم میشه معلوم میشه که این دوتا برادر هم هستن و پسرای همین شاهن اونها همینطور که داشتن سرگذشت خودشون میگفتن که کوچیک بودن که چوبانه اونا رو از دهن گرگ نجات دادن و بزرگ کردن اونها همدیگه رو بقل میکنن و گریه میکنن بعد هم میگن ای کاش پدر مادرمون رو پیدا میکردیم زن هم که داخل چادر به سرگزشت اینا گوش میداده بیرون میپره و میگه من مادرتون هستم بعد اونها رو به داخل چادر میبره و میگه بیای داخل بیش خودم بخوابید. وقتی نگهبان ها پاس دوم میان که اونها برند استراحت کنن این دوتا جای اون دوتا رو ببینن متوجه میشن که این تا نگهبان در بغل زن در داخل چادر خوابیدن بر میگردن موضوع به پادشاه میگن پادشاه به شدت ناراحت میشه میگه باید مجازاتشون کنم اما از اون طرف مرد ناشناس که سالها از این زن نگهبانی کرده میگه ای موضوع حتماً یه دلیلی داره وگرنه این زنو که من میشناسم خیلی مؤمنه بعد هم داستان رو تعریف میکنه وقتی زن و سربزر میارن و سرگذشتشون رو میگن شاه متوجه میشه اینا همون زن و بچه‌ی خودش هستن خیلی خوشحال میشن همگیشون شاد میشن پادشاه دست زن و بچه‌ش رو میگیره و به قصر برمیگرده و تو همون کشور که کشور خودش نبوده به پادشاهی ادامه میده برای همین سرگذشته که ما میگیم خداوند شاه رو گدا میکنه و گدا رو شاه خب دوستای عزیز این داستان رو شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه ممنونم که منو تا آخر همراهی کردین تا داستان بعدی خدا نگهدار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 نشانی وبلاگ ما M N D